حکمت عملی امشب ربازارتارز اندکی دیوسر از معمول ظاهر شد ساعت تقریبا یک و نیم بعد از نیمه شب بود که وارد اتاق خوابم شد و در حالی که دستایش را از پشت به هم بسته بود مشغول قدم زدن در طول اتاق شد بالاخره به سخن آمد ربازارتارز کار زیادی در پیش است جهان در آستانه یک جهش معنوی تازه است و همه جا به کمک نیاز دارد ساتگرو مجبور است همه جا حاضر باشد و به تقاضای کمک همه کسانی که او را ندامی کنند پاسخ دهد پال می‌دانم کار زیادی در انتظار انجام است من باید از کجا آغاز کنم ربازاتار برد بار باش. نوبت تو هم خواهد رسید. در حال حاضر باید آنچه را که برایت دیکته میکن بنویسی؟ تا جهانیان آن را بخوانند. آنچه که میگویم به سراحت بیان کن و مگذار هیچ شکی در ذهن خواننده باقی بماند. آری یک نکته وجود دارد تو آدم پیچیده ای هستی و ذهن تو؟ هم مثل بسیاری از واصلان حلقه بالا بدون جهت عمل می کنند. تو با بیشتر مردم تفاوت داری مثلا قادری مستقیما به کنه هر موضوعی وارد شوی اما بیشتر مردم حرفت را باور نمی کنند. بنابراین همیشه نیاز به معاشرت با کسی داری که مثل خودت پیچیده باشد به خاطر عملکرت های درونی ذهنت بود که برای ابلاغ پیام اک به جهان انتخاب شدی. اینک میپردازم به موضوع بحث امشب، حکمت عملی مشکلات بشر، عمدتا نتیجه عقاید سردرگم و جهل او از خیش حقیقی و منافع راستین خودش می باشد وظیفه نخست آدمی کشف قانون خدا و تنظیم خود با آن است. بنابراین تفکر روشن و بینش اخلاقی از ارزش والایی برخوردارند. همه روندها من جمله روند تفکر بر مبنایی بسیار مستحکم استوار است. هرچه حساسیت‌ها تیزتر باشند، سلیقه نیز لطیف‌تر، قضاوت‌ها قاطع‌تر، احساسات پاک‌تر، هوش ظریفتر و الهامات الهی‌تر می‌شوند. پس خلوص و شدت تمتعات زندگی هم افزایش میابد. به همین دلیل است که مطالعه بهترین اندیشه هایی که در این جهان پدید آمده است نشعهای ای متعالی در دارد. خدا در طبقه ذهنی مترادف با اندیشه درون آدمی است. به این ترتیب فکر فعال نیروی فعال و فکر تمرکزی یافته نیروی متمرکز است. بنابراین، اندیشه ای که بر روی هدف معینی مثل وحدت با خدا تمرکز یافته باشد خدا می شود. کسی که تصور می کند میتواند تمامی رسگی فعالیت ذهن را با نور آگاهی خود روشن سازد بیشباهت به کسی نیست که عزم کرده باشد با یک نورافکن بزرگ همه عالم را روشن کند. روح همچون بیگانه ای سیر کار می و امتیازاتی را برای ما کسب می کند. روح فقط میوه های رسیده حکمت الهی را به درون آگاهی ما جاری می سازد اینگونه تحلیل نهایی روند تفکر نشان می دهد که ذهن ناخودآگاه تماشا خانه مهمترین پدیده هاست. از مجرای روح بود که شکسپیر بدون تلاش کردن حقایقی را دریافت کرد که از دست ذهن آگاه پنهان است که رافائل تصاویر مریم مقدس را آفرید و به بتوون سمفونی‌هایش را تدوین کرد سهولت و کمال تماماً به میزان سلب اتکای ما به خود آگاهیمان و استفاده از قدرت روح بستگی دارد ما میدانیم چگونه به روح متکی هستیم پچه اندیشه های ما عظیمتر، اثیلتر و شفافتر باشند با وضوح بیشتری در میابیم که منشأ عالم فراسوی ذکاوت ما نهفته است ما خود را مجهز به ابزار لمس، غریزه و قوه تشخیص زیبایی در هنر و موسیقی میابیم اما از منشع و محل صدور این قوا تماما بی اطلاعیم تنها هنگامی که انان روح به استاد سپرده شود خیش بیرونی ما مسئولیت رهبری و حفاظت از روح را عهدهدار می شود با گیری از این عمل کرد متعالی می توان کلیه شرایط زندگی بشر را مرکوز کرد ذهنی که در اندیشه های خدایی پرورش یافته است می تواند از نتایج تمامی اعمال بیمهابای نفس اماره بر بماند چون این ذهنی را میتوان نگهبان دروازه عظیم اقلیم درونی به شمار آورد ذهن عکس عملی عبارت است از اراده معقول ذهن درونی مترتب اشتیاق غریزی و نتیجه قدرت خداست است هنگامی که ذهن درونی پیشنهادی را به عنوان حقیقت دریافت میکند روند فعالیتی را در سراسر گستره عظیم فعالیت‌های خود در پیش می‌گیرد. در این میان درست و خطا بودن پیشنهادات ذهن خداگاه نیز بر نحوه فعالیتش اثر نمی‌گذارد. چنانچه اطلاعات دریافتی خطا باشد، میزان خطارات و صدماتی که به فرد وارد می‌شوند هم در مقیاس کل هستی او مشهود می‌شود. استاد حق در تمامی دقایق و ساعات زندگی فرد به نگهبانی مشغول است به هر حال ذهن آگاه آدمی فقط در ساعات بیداری انجام وظیفه می کند هنگامی که این بخش از ذهن بیدفار رها می شود یا آنگاه که قوه قضاوت فرد در حالت تعلیق است ذهن درونی آماده پذیرش هر انگیزه ای از هر منبعی می باشد مگر اینکه شکل نورانی استاد در آستانه آگاهی او به محافظت نشسته باشد خطرناکترین شرایط هنگام ظهور حیجانات افراتی مثل ترز اوج خشم و یا تابعیت از نفسانیتی افسار گسیخته و فرد حاکم می شود در این هنگام ذهن درونی آماده پذیرش انگیزش چون ترس، خودخواهی، هرس، هقارت و سایر نیروهای منفی مشتق از افراد و شرایط محیطی می شود ناگوار این تأثیرات ممکن است به دیرازابی انجامد و موجب افسردگی ذهن درونی گردد مگر یاری استاد را طلب کرده باشیم ذهن ناخداگاه به واسطه قوه اشراق می بیند بنابراین روند اعمالش بسیار سریع است این ذهن منتظر روند کند منطق و استدلال ذهن خداگاه نمی شود. در واقع نمی از آن روند سود جوید مشاهده شده است که به محض اینکه تحقق آرزوی را از استاد طلب کنیم که در جهت منافع همگان قرار دارد نیروهای دستندر کار می که تحقق آرمان مطلوب را میسر می سازند این گونه است که در میابیم منشه قدرتی وجود دارد که آدمی را در تماس با قادر مطلق قرار می‌دهد. در این مقوله اصلی بنیانین نهفته است که ارزش هر گونه تحقیق و مطالعه را عمل عملکرد این قانون بسیار جالب توجه هست. کسانی که آن را به کار میگیرند در میابند که مثلا اگر قرار است مصاحبه مشکل آفرینی با شخص بهخصوصی داشته باشند هنگام فرارسیدن موعد دیدار گویی نیروی مرموز همه ی مشکلات را از پیش حل کرده است در حقیقت کسانی که میآموزند چگونه به شکل نورانی استاد اعتماد داشته باشند در که منبع بیپایانی از امکانات تحت حاکمیتشان قرار گرفته است ذهن ناخداگاه منزلگاه آرمانهای هنری و خیرخواهانه بشر است فقط با استفاده از شیبه های دقیقی که به تدریج این اصول نهادی را به از میکشند، می‌کشند میتوان آن را در آدمی به انحراف کشید چنانچه خیچ ناخداگاه آرایش ناهنجاری را پذیرفته باشد استفاده از مانتراهای تبرکیافته یافته و خیره شدن به شکل نورانی من در چشم معنوی میتواند تمامی شرایط را معکوس کرده و دوباره روحیه نشاط و سلامت را برقرار سازد صلح و آرامش یک بالا دیگر باز میگردد ذهن ناخداگاه قادر است شرایط را تغییر دهد چون بخشی از ذهن کیهانی است و جز ناگزیر از همسانی با کل است بنابراین همان قدرت خلاق را دارست که قدرت ایک نام دارد این واقعیت هم مثل هر مورد دیگری در تابعیت از قانون خدا صورت می‌پذیرد و آن هم قانون عشق است. قانون عشق قدرت خدا در خلقت است. قدرتی که به خودی خود با مخلوق خود ارتباطی دو جانبه دارد و موجب تجلی آن می‌شود. من استاد حق در غیر حیاتم هر کاری از دست من ساخته است تو جزئی از کال بد کیهانی خدایی و در دستان او قرار داری او از تمامی فرزندان خود موازه است به عمل می آورد. به همان ترتیبی که یک پدر مهربان نگران سرنوشت. خودت که است